توجه کن بادم باش حواست باشه دوباره خراب نکنی هم. باشه چشم اینا رو جدا خو. اینایی هم که دارش خط کچیدم روی کاغذ بنویس. خسته نباشید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 موقع اومدی ببینیم چه چکلات هم میاد آره خیلی خوشگله فروخ. من رو یه دقیقه با طرف بزنم وایست فراموشی داشت یادم میرفت روننده نیم ساعتی که پایین منتظر شما علیذی <geekly> مدمزل <مطبعه allá>. <staring> منتظر من برای چی؟ مهرات کارت داره با حرف داره در چه خصوص امر خیره گمونم با دیگه میدونی که از تخیل خیلی بدش میاد. من امادم با حرف بزنم با خودش بایو. حرف بزنم ها هیچ من با تو یک دو تا تمام خانم بفرمایم خایش میکنم ماشین اماده است بفرمایم توت خریدم گذاشتم تو ماشین ماشین رو دستمال کشیدم تمیز شده بفرمایم خایش میکنم میگه چیز پنهانی داشته باشه. تتوی کار ویرون کشید. اکاسی میکنه. ندیمه رو ویرون کشیده. عکاسی میکنه کنه مدتتییه برگشته ت توی عنوان اشرفی. یه دختر اشراففی خودشون روشون رو بفرنگید تو حه چهارم این روزنامه مطلبی نوشته که میتونیم ببینین نخوام. توی همون پرنگسون خودش رو بالا کشیده. تو ساعت تنهاییش عکاسی یاد گرفته الان جز خبره های این ح تومان بکتته. خانواده این خیلی هوا شده از باقی ماده های قجرم طولکان خواهرش شک وصلتره. اینا رو میدونم از خودش ببین دختر دست پاداریه الان ظاهر نمیدنه کجا اومده سر پربادی داره. بعضی از فوتوهایی که گرفته گوش نزمیه رو تیز کرده سرش در درده سر درد میکنه مادرش مرده با پدرش رو نامادری زمیدی کنه خجد خونه آقاشم که دیدیم این که پروفیسور عباسد جراح، تو بیمارستان احسان خان کار میکرده. مدتی بازنشسته شده یا خونه نشینش کرده. توی نظر حکومتیی آس. یا کاری کرده یا قرار کاری بکنه. آقا. من کوچکتر از که شما مرسیت بکنم. چی خاصی بگیم؟ من یه مصطفیم. کسی به یه مصطفی نه میگه. مصطفی میگی تا ستونه این ورمار زمین میل ارزه. چرا میلرزه؟ از پولم می‌لرزه از زور این مشتا می‌لرزه ما اینجا نه نداریم. اونی که نمیگه یه حساب داره اونی که نمک می‌خوره و نمک تو میشکنه، نه اش یه حساب دیگه داره کسی به یه مصطفی نه میگه. می‌گه چه ولی نشونیش اینجا نیست تنه نشته برده بروی ویدون تنه نخواه جلو آفتام سگ بسید و خانوم خیلی وقت منتظری؟ نه تازه رسیدم بفرمین بفرمین یکم تأخیر داشتی عذر خواهی میکنم نیازی نیست حتما فروقا زمان فراموش کرده بهت بگیه خوارم خوب میشتسم سر به هواست سرش خیلی شلوغه کارش خیلی سخته شکلات نخوردی خوشمزه است عذاب گذشته است تازه است فرنگ رسیده ام... گفتم کشی از اینا بیارم برامون میرسه بندر همه بگو. چی میخواستی بگی حرفتو بزن میدونم که زیاد دل بسته شغل من نیستی و این بند و بساط چشمتو نمیگیرم. اگه تو زندگی من همه چیز عوض میشه. تو که تونستی از اون فروغ بی دست و پای لوس خانم دکتر بسازی حتما میتونی زندگی منم تغییر بدی. من از اون مردا نیستم که پاوام بکنم توی کفشو بگم همونی که من میگم.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 اما تو انتخاب کردم چون چیزی در تو دیدم که تو کسی دیگه ندیدم نمیخوام فکر کنی به خانواده ای ما مدیونی یا چون به هر جا که رسیدی به خاطر ما بوده حق من هستی میگم حق منی چون دوستت دارم و صلاح تو در ازدواج با منی ازدواج ندارم مربانو تو که قرار نیستم این فردا بری خونه بخت زمان کافی داری من که مانه پیشرفته تو نمیشم آخه من من انتظار داشتم تو هم مثل من منتظر رسیدن این لحظه باشی این تو که به نظر میرسه اصلا خوشحال نشدی نشل برادر منی خیلی خوب بیش از این نمیخواه مقتی تو باش نگیدن این حرفای بگیرم نمیخواستم ناراحتت کنم ناراحت نیستم مقداری فکر کنی شما که نمیخوایی منو مجبور کنی این تنها برای پرد کردم که خودت بالا بکشی حالا اگه میخوای تا آخر عمرت تحجاه بمونی انتخاب با خودته اسمایل بله آقا این فرادخانی بی پدر مادر دوزو بیار تو خواست ببخشید؟ برو اهبانم برو فکر کن هر چقدر که میخوای فکر کن تو به هیچ کاری نیستی تو دوست نیمی باشه دکتر. یه لحظه. حتما. مشکلی پیش اومده؟ میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ خواستم جراحی مریضامو ایشون بهت بگیرم. پروفسور. بله. شدم که جراحی نمی کنن. همه مردم امروز چشمشان به جانب رودرنه و گوششون به اخباری است که درجا می‌رسد. او برگردان است. سلام. سلام. دنبالتون می‌گاشتم خانم فامیلی شکیباست. بله. اه... می‌خواستم ازتون خواهش بکنم برام یه کاری انجام بدین. ممکنه بفرمایید. شما این آقارو میشنسیم؟ بله این عکس خودم از ایشون گرفتم میخواستم لست بکنین با آشون صحبت بکنین عمل جرائی مریضم او ایشون به اختیقه گیرن برای این اومده اینجا دکتر زبردست و شایسته زیاده شما اینجا نوشتین ایشون استثنائن این برقهانو بیا توتا بله من قصد مزاحمت و ایجاد رنجش ندارم بلی یقین دارم فقط شما از این کار برمید من هیچ کاری نمیتونم برسوم بکنم. من هرچقدر که حزینش بشه پرداخت میکنم آقای محترم من یه عکاسم اینجا هم دفتر مجلس نداره و شفا مریض شما هیچ ربطی به من نداره میتونید بیت از بیمارستانش بپرسید واقعا نمیخوین کاری بکنی. فقط میتونم نشونه این رو بهتون بدم در همین موکر نمیشه بایزه بنا دارد نمیشه چیشا در تیز اقا آره شکیبایی برای از بنا در از بنا در تو کار چی کام اونجا خواهی بایزه آروم باشه آروم باش یه نفس همیق بکش شمرده شمرده چی شده؟ بفرمایید باش بشین بفرمایید خانوم چجوری معطلشون کنم این کاری از دستم بر نمیاد واسه چه آخه به سرم بریزم میخوای بهشون بگیم چیه اتفاق افتاده نه چه نگونیا چون اون بانوی میشک دیگه نمیشه جمعش کرد آخه و چی معطلشون کنم اصلا دیگه ته کشیده یه وسی چیزی رو بنداز وسی گوشهایی بشه یه سربات بپرس الله اکبر بوله محمد میری پشو پشو کارید درم آره آره پشو پشو بیا بیا برای اونتون برای اونتون یک دستش کرده تو دماغش دار چیز میکنه اون یکی هم داره سیگار دود میکنه خیلی عصبانیه سه نفره آره آره سه نفره اون یکی هم داره چوبش تمیز میکنه به گمون هم چوبش خونیه و خونی اون از کجا دیدی آره ببین بابا چوبه شخونیه گیفای سر بوژگی زعن بولا نه باید، یه ماشینم دار میاد انگار من مار دستگیر کنم یا علی یا علی واسه این وای چاک کنی چاک کنی چاک کنی باجی خانم اون کو ببوشو تو چاک کنه آ جانم اومادم آ جانم جون آ جانم اومادم کنی چاک کنی, جب کنی, جب کنی. جب کنی. بد ما گجا گجا Sen ha dokter ha! Hamar bu al başımı! Verin bana! Verin bana! Verin! Yavaş! Hamar bu al başımı verin! Verin! Verin! Yapma! Yapma! Yapma! Yapma! Yapma! Yapma! الان گجا بودی میزوشی همه امنامی بودن بعد میوادی سراغه بود شما اینجا چیکار میکنی خون بیرون چه خبره نگران نباش الان همه شنو رد میکنه میره کی کی راپورتو شما رو را داشت چیه ندونم حضرت عباس بزنی کمرش انجله کنین دیگه چی کار میکنی زنو دخترو بیم بریم بگیم به اجله بیان تشبه همه کنش بیم بریم بیم ب بیا امان میان بفنی. دوباره بفهم این با خید شرمنده شدم ببخشید تریده جو. جو خدا اپس خدا اپس خدا اپس دقیقه بعد جبران میکنم ببخشید دیگه بازم این برا تحریف بیاری درست به موقع رسیدی چاپ چاپ. نه نه نه این بر این بر این بر, این بر. این بر. اینا تو یه زهر چشم از زنها و دخترهای مردمی نمیگرفتن دست بردار نبودن آخه این چه کاریه فریده جان وقتی اصرار میدون <تصفيق> اگه این معمورا پولکی نبودن معلوم نبود چه بلایی سرتون میابردن اینا مثل گابه بچی میمونن سرشونو گوشت سکنجه دیبار که دیوارو خراب کنن نمیدونن آخری شاخو گردن خودشون میشکنی. آجان که اهل فکر کردن نیست فقط مثل خود چربی زیاد میکنن بالاخره هر پیشرفتی یه حزینهی داره اینا مثل گیب بارونه میمونن عوضی اینکه پاره رو سالم کنن میزنن سالم پاره میکنن. آخشم بسته کنش میمونه بسی ما بدبخت بیچاره ها جناب شاه بین مردم محبوبیتی نداره میترسم ازش هرکی که سرش به تنش میارزی در رو بازنشسته کرده به همه بدبینه نقله که تو رفته خواهم به خودش اصلاه میبره هرچی تو دوره این رشته بودن سردار صفح فهم بکرد دل و جرعت دارین جناب خسرو هستم مهرگان بله جناب مهرگان اعتقاد این مردم ریشه داره راحت نمیشه خوشکندش یعنی کار این آدم نیست امروز فرداست که کوتابیان در هر صورت سرشاخ شدن با این جماعت به سلاح نیست گاهی باید برای به دستو حق جنگید <تصفيق> آقا همکارتونه نه خیلی خانون نه خیل. اف... یه مریضی دارن توی بیمارستانه که آها شما تبیر بید هرچانه با دسته این مرد قریبار میگیر میردیم محلی می چرخون که آبراین نداشته ما رو ببری اوازه تشکره تو هر کدیم ازی دختری که شما رو دیدار رفتن صد و قصه و هفتانه بسیدن بازم چنده. دختر، دختر دختر سطح کتا خونی دو که کتاب خونه دور دور چرخیدی که این بیفجر یا یاد بگیری این دی ده مردم گوش شده ترسید نمیارین تو مزاحمتون نمیشم. من خیلی کار دارم ممنون زحمت کشید. خیلی ممنون. زحمت کشیدی. فردا بیام دنبالتون بریم چرا آقای پروفسور. لازم نیست شما رو به زحمت بندازیم. خودم باشون هم هایی میکنم. یقین دارم که از فسر کاری برمید. تشریف نبیاری شاد بخانو. خودتون نمانه نکنه. سییدی زور میدین تو بازوستون. این بازش، نه، ارزش مدارا نیست. بعد جوبه کنی، زور بدین. میگم آقا ضعف دارین؟ ضعیف شو، یه اون رزی نکونین. چقدر حرف میزنین؟ چی میخواین؟ آها، تو پرشگاهت پل شده. چی گفت؟ نه نه، سوجی تو چشمه شده. چی شده؟ بریم تو جرثقونه. تو هر بوت نیست. با این رویه خونه پرش بتونیم تا آخر هفته روزنامه رو چاپ کنیم. رفتی بیشه نهراتفان گفت فکره ای داره برای مجرای ها سعی کردم باهاشون قرار بزنم وقت نمیدن آقا این روز یه یک ساعتی پشت در اتاقشون محتر شده این چی این؟ جوشه مثل که آقا یک ساعت یک ساعت باید صبح تا شب شب تا صبح پاشنهی در اونجا جاکم بکنی جناب کاشفی، حاضر اکزا بفرمین نه یه چنده دیگه هم پس اونا رو هم چاپ میکنم براتون میارم. میاره آنی یه گوشاییش ایجاد بشه برای به این بحانه این نمیتونستی رو داییشو رو دردر اکس بکنیم من برای تملق و چاپلوسی رسی تبلیغ باسته شما این نکردم ازشون عکس گرفتم چون نیخواهیم دکتر رو محفظن بسیار خرابه خانم شکل بود ولی شما ملتفت نیستیم اینجا پاریس نیست اینجا اینجاست مردم به سختی مجله جلده میخورن اگه وز به همین منوال پیش بره باید در اینجا تخته کرد رفت من میدونم شما میتونی برای بهبود ماجرا یه قدمی برداری اما تعلل میکنی نمیدونم چرا میخاین یه کتاب توزیع و تفسیر سراهم کنی مغز کلامتونو بگی با مهرات خان صحبت بکنی باج حرف بزنید من مطمئنم یه چیزی شده که بازیگران دیگه خاطرشون شده خودشون باستگانشون هیچ کدوم تالیفاتشون رو نمیدن به مجله هر چقدر باشون تماس میگیرم هر چقدر تلفن میکنم هیچ جواب مقولی ندارن که بدن پیگیری این دست مقولات جزء وظیفه بنده نیست خب بلاخره تو این وضعیت کاری بکنیم. من شما نداره. اگه این رابط بکنه هر دو تو توی مزیدگی گیر میکنیم. آلا راها. خواهش میکنم که باشون حرف بزنید. بلو یهویدم دست شپو بلو گفتم بلو موشو برمی تو صورتش یهویدم بردی جوتش کفتی په آقا ماره بگی دیگه سر سر یعنی بدیریم انگار که مارمولک برمیدن تو شا من فقط تورین به سر صورتی کسی میزنم این طالب رفاقتم طالب دوستیم مرد بس با عقلش به دل بقیه حکومت کن نبا زودش آره، قالی منه همون تهبای جلیه همون ما صدیه ایا هستن هم جلیه کشم پاک نمیشه هستن یادم نم نمیره آقا داره لفتوزه گفت، تو زیر همون لفی میخوابی که دوختم آقا شما رو میگی، قاطی نکردی، از این بر ستون به اون بر ستون که اونم ایس قدر نب ایس پرن ندم، یک یکی سدیم <تصفيق> ای بابا من از تو چی میخوام تو با من چی میگی. گم یکایی بکنی این مهوان رو غافل گیرش کنی آقا اون که میدون این گاوه نروه ایش که نمیکشه شوخ که نمیزنه هیست زمین زراحت دل حکیو میکنه سرای سوزا چیه سلام سلام ماه مجلس سرمه جادو به چشمت مالیدی پیشونید معلومه چی تو دلت میگذره نمیخواد چیزی بگیبی بشی بدخنی میگن سری که عشق نداره که بیواره بیباره لبی که خنده نداره شکاف دیواره سر من که بیواره بیباره یا لبم شکاف دیواره تو فروغ مثل من مثل طلاو آفتابی عزیز جون هم تو شما جد اینجاست مهروز قالری آقا برای حسین فالوده دو تا فالوده دو تا بستنی دو تا بگی بیا نوکرم آب نوشابت باشه باشه اخی خانم شما چی نمی خورم نوکرم تو سر سرمه این این بهروزم شیرینه ها ما از بچگی همیشه کنار هم بودیم من مرد از برادرزاتر بودم یا بهروز همچین میگه انگار الان یه گوز پشتت درآوردی یه اسام گرفتی دستت صد رد کردی نه؟ دارم در مورد بچگی همون حرف میزنم ازت ممنونم از بچگی تا الان در حقم برادری کردی همیشه مثل یه برادر کنارم بوده. این داستان برادر برادر چیه توی میگی؟ برادر سیری چنده از اون موقع تا روزی نبوده که فکر و روز روزمون نگیره و حرف و خنده ها چپ بچه که بودیم همش خواب میدیدم دوزیدنه تو من میبادم نجاتت میدادم موقع نجات دادن جونم و دست میدادم بر. تو فکر نمی کنی عشق آشقی باید دو طرفه باشه؟ چند سالته؟ تو که بهتر از خود من میدونی ما با این همه سال گذشت دروازه دلتو باز کن بذار این چنگک بیفته تو حلقهش دره دلتو رو به همه بستی اینجوریام هم نیست چرا همینی که میگم این نیست که منو دوست نداشته باشی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 دی افتاده دیگه به زور که نمیشه دلبری کرد میشه آقا ول کنین حرفا رو مجله به کسادی خورده میگن رو قطع کردین نقل آگاهی‌ها که دخلی به خασه‌گاری تو از من نداره کدوم آگهی چی میگی یعنی گمو میکنی تلافی جواب ردیه که به من دادی بیا همین الان یه عکاسی تو لاله‌زار بخرم برات این روزا عکاسه زن حکم تلا رو داره من دار و ندارم مدیون شکوه خانوم خانواده شما کار مهم نیست فقط نمیخوام که از من دلگیر باشی خاطرت برام خیلی عزیزا هر کاری بخوای برات میکنم هر کاری فراموشم کن قبول کن که من تو به درد زندگی با هم نمیخوریم آگهی ها رو قطع نکن اگه لحظه‌ای فکر کردی قد شدن نه اگه یا, یا کارت ربط یه مسئله شخصی مونده رو سخت دارش ده گوهی اون علتش رو پیدا کن نباید مزایمت می راست بکی بیام یه لحظه بیمخوایم ایسی نشونت بدم یه چیزی بیا دقیم روح آخری مودله تو سرعت و حیبت تا ننبه البته سلام نیز قبل از گرفتن تستیقیمونه بدنش تا ولی که دوری میشه بسید دوره زده با هدیه رو پس بده کردن برای این آدم از بعد آقا جونواری سادن بهتره ای با یکی دیگر از به میزنه مسته که شما واس بخوری اجرب دونیوی شده میتونم برای بغضت همه جیمو داده باشم میتونم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 میرسم به تو تو فکر نمی کنیش خواهر شدی دو طرفه باشه جوری که هست. از بچه تا الان در حقم برادری پردی همیشه مثل یه برادر کنارم دیم درد تو آخر درد من میشه آخر این بازی تن به تن میشه را نمیخوام دیگه من مجبورم من هوای اومدم اینجا مطمئن کنم هیچ اتفاقی بین من و فراموش نیفتاده فراموشم نمیخوام از دنیا چرا اون چیه؟ گمبور بیرون پاشو پاشو خجالت بکش فروغ پاپیچه چه من نشو امروز روزه من نیست چی شده که نوه مستوفی مشت زن و یک که بزنه تهرون اینجوری خودشو چه باخته قربون چشمات برم من این همه دختر تو چرا برن کردی به این خوشبیر خانم ها فرخ. خودم دست بهترین دختر تهران میزنم تو دستت با اصل و نسب با کمالات فروغ لم وقت این پاشو یکی آوردم حتما بعد بریش پاشو من نه دیدن دارم نشنیدم این یکی دوای دردت ها نمیدی نه پاشو بیا اگه بد بود برگرد پاشو این دست هست سرمان برمیده فروغ دیوونه شدی ده دقیقه به حرفاش گوش کن اگه بهش ایمان نایودی هرچی دلت خواست شوخی میکنی یه زده به سر جان به خاطر من آدمی زاد تازنده است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 جمع کنیم بسواتی دیزم دیم بریز بریز چهار و میشه دوازده. با یک میشه سیزده نحسی این سیزده بعد جوری دومنه تو میگیره لازم بودی خوز اولا تو به این بگیری؟ با از کجا آوردی؟ مگه نگفتم بگو مسافر داری خوشو جمعش گم نه تا رو خود رو بشین بشین نبخواد کمک کنی دست درد نکنه شما که زن خونه نیستی سبتو شب پا به پایی مردو کار میکنی من که میشورم میپزم میزنم دلتو میخوری نیوشی جون میکنی نیوشی جونه جونه حالا خوش نیست فریده آتیش به جونم نزن <تصفيق> میدونم نشونه چیه نشونه خوشی زیاده خوشی که زیاد میشه میزنی زیر دل, دل آدم بعد سر آدم میابده پایین لب و چش آویزوب میشه مثل من بدبختی واقعی نکشیده بابا چوبه برم بندازن تو دهره جزا میا پنج شنبه به پنج شنبه بری ببینی خورده تیکه تیکه جونشو خورده هوست خوناشو زیر چاه خلا خاک کنه دور از جون آقا جون این حرفا چیه پش پش بویو به دست سرت بزن بییش اینجا کمک کن سگه زیاد چله آدم گنده میکنه خیلی سرم درد میکنه کردی چهوار قابل از چیزی نیست چطور انقدر تو داری با من هم نمیشه از ذیره زبانو حرف کشید جسارت نمیکنم آقا نوکر با حرف اربابش خوش میده عمل میکنم درید که ذرا زبان همیشه ساز نمیزنن بعضی وقتا زبون بی دلیل میچرخه آدمو رسوا میکنه اما یه وقتایی هم که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 قربونه برم داری گریه میکنی؟ قربون اون اشکات برم. نگران نباش. نگران نباش، بهترین طبیب شهرو براش پیدا کردم. آره عزیزم. آره. گریه نکن خانم. من حواسم به همه چی هست عزیزه دل. کربون و خان ما نشد تا به مراد ما زمان شان امیردی سال بارون نمای هلال ماه رمزان سفره های افطاری را به آب می میدهیم